صفحه 264 صفحه 264 وقتی نزدیک حیوان رسیدم فهمیدم مادیان است که او را به نرده چوبی در گوشهای بستند همین که مشغول وارسی حیوان بودم ناگهان صدای مردی از پشت سر مرا به خود آورد در حالی که از مشاهده من در آن جزیره دوچاره تعجب شده بود از من پرسید تو کیستی من هم شرح ماجرای خود را برایش تعریف کردم سپس دست مرا گرفت و با خود به داخل قاری برد که چند نفر دیگر هم در آنجا بودند و حیرت آنها از دیدن من کمتر از حیرت من از مشاهده آنها نبود بعد از ورود به غار آنها قدری قضا به من دادند و سپس از آنها پرسیدم چرا در چنین بیابانی گرده هم آمدند آن... آنها پاسخ دادند که ما از مهتران شاه معراج که سلطان این جزیره است هستیم و هر سال در فصل معین مادیان‌های شاه را به این محل گرد می‌آوریم تا اسب دریایی از دریا خارج شود و در این محل با مادیان‌ها جفتگیری کند شیره اسب دریایی آن است که بعد از انجام جفتگیری با مادیان بلافاصله مادیان را خوشد ولی ما مواظب هستیم و به موقع با سر سرصدایی که راه میاندازیم، اسب را به سوی دریا فرار می دهیم و بعد مادیان را به قصد سلطان می و کرهایی که از آنها متولد می شوند برای سواری سلطان تربیت می کنیم و آنها را عصب های دریایی می نامیم مهدران سلطان به من گفتند فردا به شهر برمی گردیم و اگر تو یک روز دیرتر به این جزیره آمده بودی حتما تلف می شدی زیرا از این محر که تو هستی تا نقطه ای که منطقه مسکونی جزیره قرار گرفته. فرسنگ ها فاصله است و محال است کسی قادر باشد این فاصله دراز را بدون آب و غذا طی کند و باید حتما راهنمایی هم موجود باشد که در این بیابان بی آب و علف بیراه نرود هنگامی که محتران شاه مشغول پذیرایی من بودند از به دریایی از دریا به جزیره آمد و سراغ مادیان شاه رفت و بعد از انجام جفتگیری همین که خواست مادیان را تومه خود سازد نگهبانان شاهی او را از مادیان دور کردند و دوباره به دریا مراجعت کرد. صبح روز بعد، مهتران شاه مادیان را به سوی پایتخت جزیره محل سکونت سلطان حرکت دادند و مرا به حضور سلطان معرفی کردند. سلطان با مهربانی از حالم جویا شد و من هم آنچه اتفاق افتاده بود برایش تعریف کردم. سلطان به سخنان من گوش کرد و کاملا نسبت به سرنوشت من خود را علاقه من نشان داد. سران سلطان به دستور شاه از من منفذیروی کامل کردند از آنجا که من شخص بازرگانی بودم غالبا با سایر بازرگانان منطقه در تماس بودم و مخصوصاً با بازرگانانی که از نقاط دیگر جهان به قصد داد و ستد به این جزیره می‌آمدند ملاقات می کردم زیرا علاقه من بودم که چنانچه خبری از شهر بغداد دارند در اختیارم بگذارند و بدین وسیله فرصتی به دست آورم که به بغداد مراجعه کنم پایتخت کشوری که معراج پادشاه آن است بندر زیبا و بزرگی است که هر روز کشتیها از چهار گوشه جهان در آن بندر به رفت آمد مشغولند در این هنگام فرصت را قنیمت شمرده و با عالمان بزرگ هندوستان به رفت آمد پرداختم و از مباحثات علمی و گفتگوی آنها بهره میگرفتم و از بدست آوردن اطلاعات تازه لذت میبردم در این حال سعی می کردم که هر روز در دربار سلطان حاضر شوم و با فرمانداران و استانداران و رؤسای بزرگ مملکتی و همچنین رؤسای کشورهای خراش گذار سلطان که دوربر او بودند آشنایی برقرار کنم درباریان آن و اعیان مملکت که در دربار رفت آمد داشتند هزاران پرسش درباری کشورم از من میکردند و من هم درباری قوانین کشورهای آنها از ایشان اطلاعاتی به دست جزیره دیگری به نام جزیره کامل از متعلقات این سلطان است که هر شد صدای نواختن تبل و از آنجا به گوش می‌رسد و در نواردان آن منطقه آن جزیره را محل اقامت میدانند خیلی علاقه داشتم که این جزیره عجیب را ببینم و در سفری که به آن دیار کردم هایی را دیدم که درازای قد آنها به 100 تا 200 متر می‌رسید چنانچه دو چوب و یا دو تخته پاره را به صدا درآورند این ماهی‌ها به پرش کردن روی آب می‌پردازند در این جزیره ماهی‌های دیگری هم هستند که طول قد آنها یک ذرع و سر آنها شبیه جغد است یکی از روزها که در بندر گردش میکردم یک کشتی به بندر وارد شد و لنگر انداخت بازرگانان مسافر کشتی دستور دادند که کالاهای آنها به انبارهای کالاها فرستاده شود و باربران های مال و تجاره را از کشتی به انبارها منتقل میساختند. ناگهان چشمم به یک اد کالای افتاد که متعلق به خودم بود و نام سند باد روی آن نمایان بود. فهمیدم این بسته بزرگ همان کالایی بود که در بندر بسته به کشتی تحویل داده بودم و ناخدای آن کشتی را هم شناختم و دانستم او همان ناخدایی بود که برادر ساحل جا گذاشته بود و قبل از سوار شدنم به کشتی حرکت کرده بود. و اصرار داشت که من در دریا غرق شدم فوراً به سراغش رفتم از او برسیدم این کالا مالی چه کسی است؟ پاسخ داد مال بازرگانی از اهالی بقداد به نام سند است که با ما به سفر دریایی آمد ولی همراه چند سند دیگر کشتی به محلی که ظاهراً خشکی به نظر می رسید ولی در واقع نهنگ هیولایی بود قدم گذاشتند و با احساس حرارت آتشی را که آنها بر پشت او بودند، به حرکت در آمد و به زیر آب فرو رفت و در نتیجه افرادی که روی نهنگ قرار داشتند در آب افتادند و غرق شدند و سنباد هم یکی از آنها بود این ازهای کاله مال سنباد است که تا کنون آنها را حفاظت کردم و در انتظارم که بستگان او را پیدا کنم و به آنها تسلیم دارم و سودی را که از تجارت کاله های سنباد بردم به آنها بپردازم زیرا آنها را امانت دانسته و مالکیت آن متعلق به آنهاست من گفتم اینا خدا من همو سنباد هستم که تو تصور میکردی در دریا غرق شده است و آن عدهای کالا هم به من تعلق دارد وقتی ناخدا سخنان مرا شنید گفت خدای من به چه کسی میتوانی روزها اعتماد کرد ایمان و عقیده از بین مردم به خلی از میان رفته من خود با چشمان خودم شاهد بودم سنباد در دریا غرق شد و تمام سرنشینان کشتی هم منظره غرق شدن او را دیدند آن وقت تو میگویی که سنباد هستی مگر نشود یعنی ادعای تو را پذیرفت ظاهرا تو آدم پاک دامن و مسلمانی به نظر میرسی ولی آنچه میگویی با عقل درست در نمیآید تو این ادعا را داری تا اموالی را که مالی دیگری است در تصرف خود درآوری به او گفتم اینا خدا اگر اجازه دهی و اندکی سب کنی من تو را قانه خواهم ساخت که باور کدی راست میگویم. گویم گفت بسیار خوب ثابت کن که مالک کالا هستی آنگاه منان چرا که از آن لحظه کذایی در دریا به سرم اومده بود تا ورود به جزیره و روبرو شدن با مهتران سلطان میراج و حضورم در دربار سلطان برای او بیان کردم و نام خودم را که روی کالا نوشته بودم و نشانی کالاها را دادم و ناخدا مطمئن شد که آدم راستگویی هستم و از من خواهی کرد و فهمی که درباره هم قضاوت درست نکرده است علاوه بر تعدادی از مسافرین کشتی که از بازرگانان آشنای من بودند بیرون آمدند با من سلام و احوالپرسی کردند و درباره هویت و شخصیت من توضیحاتی دادند و از ماندنم خوشحالی خود را ابراز کردند ناخدا بعد از شنیدن سخنان بازرگانان و مشاهده یه رفتار آنها با من، مرا در آغوش کشید و خدا را شکر کرد و گفت کالاهای خود را تحویل بگیر. آنها مال توست. من از ناخدا تشکر کردم و به او گفتم تو مرد با خدایی هستی که اموال مرا تا کنون حفظ کردی و به عنوان شناسی از او مقداری از آن کالاها را به او بخشیدم. از میان کالاهای تجارتی آنچرا که گرانبهاتر بود انتخاب کردم. به نزد سلطان میراج بردم. و به عنوان هدیه به او پیشکش کردم سلطان میراج که ملاحظه کرد اشیاء کمیابی را به حضورش تقدیم می‌کنم پرسید اینها را چگونه و از کجا به دست آورده‌ای من هم سرگذشت سفر خود از بغداد را با کشتی و داستان نهنگ و بقیه ماجرا را برایش تعریف کردم سلطان از ماندن من شادمان گشت و هدایای مرا پذیرفت و در مقابل هدایای ارزنده تری به من مرحمت کرد بعد از آن از حضور سلطان مرخص شدم و با همان کشتی نشستم و کالاهای خود را با کالاهای محلی مبادله کردم و آنها را در کشتی قرار دادم و کالاهایی به همراه بردم از چندین جزیره گذشتیم و عاقبت به بندر بصره وارد شدیم و از آنجا به داخل شهر رفتم و یکصد هزار سکهٔ زر در این سفر سود برده بودم من و اعضای یک یکدیگر را در آغوش گرفتیم و از دیدار یکدیگر شاد شدیم همه از بازگشت من شاد بودند. با سروت سرشاری که به دست آورده بودم، چندین غلام، املاک و عراضی متعدد خریدم و قصد مجللی در رویان عراضی بنا کردم و آن کاخ تازه ساز به استراحت پرداختم و بدبختی های سفر را به دست فراموشی سپردم. سخن سنباد که به اینجا رسید، لب از گفتار پرو بست و داد تا نوازندگان دنبالی نواختن خود را بگیرند. میهمانان به خوردن و نوشیدن غذاها و نوشیدنی‌های گبارا مشغول شدند و تا پاسی از شب در آن کاخ زیبا ماندند. هنگام پایان مهمانی، سنباد دستور داد تا کیسه از سکی زر که تعداد آن صد عدد بود به هندواد بدهند و به او گفت این هدیه اینا چیز را با خود به خانه ببر و فردا اول شب به اینجا بیا که شام را مانده امشب با هم صرف کنیم و بقیه سرگذشت و ماجرای خود را برای تو بازگو کنم. باربر فقیر قرقشادی از آن همه احترام و پیشکشی ارزنده به خانه خود برگشت و را که در آن روز و شب برایش پیش آمده بود برای زن و فرزندانش تعریف کرد. خانواده باربر زنشا گذاری گفتند خداوند بخشنده و مهربان روزی آنها را به دست سندباد نصیب آنها کرده است. روز بعد هندباد بهترین جامعه خود را دربر کرد و روانه یک کاخ جهانگرد سخاوتمند گردید. وقتی که همه میهمانان در آنجا حضور یافتند شام مجللی مانند شب پیش روی سفره چیده شد و نوازندگان هم به نواختن پرداختند. میهمانان تا دیر وقت مشغول استفاده از آن خانه گسترده که با بهترین خوردنیها آراسته شده بود گشتند. آنگاه سنباد رو به حاضرین کرد و گفت میهمانان عزیز من. حال وقت آن است که سرگذشت شگفتانگیز خود را در دومین سفر دریایی هم برایتان توضیح دهم که از سفر اول شنیدنی و جالتر است همه حاضرین با سکوت خود آمادگیشان را اعلام کردند دومین سفر دریایی سند بحری بعد از اون که از نخستین سفر دریایی خود بازگشتم فکر کردم با ثروتی که از راه بازرگانی دریایی به دست ام زندگی راحت و آسودهای را در شهر برداد بگذرانم و از هم با دوستان و خیشان لذت برم ولی طولی نکشید که زندگی آرام و بدون هیجان مرا بی کرد و از سوی دیگر شوق تجارت دوباره در فکرم قوت گرفت و مرا بران داشت که دومین سفر خود را آغاز کنم با این ترتیب دست به خرید کالاهایی زدم که فکر می کردم در نقاط دوردست دست می توان آن را به علاق فروخت و ضمنان با چند تن از بازرگانان پاک دامن برنامه سفر را تنظیم کردم در روز حرکت به کشتی بازرگانی خوبی نشستیم و سفر را آغاز کردیم. در چندین جزیره در طول سفر مقادیری از کالاها را به جزیره نشینان فروختیم که سود قابلی به دست آوردم و مقادیری هم به صورت مبادله کالا به کالا تجارت کردم. سفر خود را دنبال کردیم تا روزی به جزیره ای رسیدیم. لنگر انداختیم و گام بران سرزمین گذاشتیم. درختان میوه از هر قبیل در آنجا بود. ولی بقیه جزیره را صحرایی تشکیل داده بود که اثری از حیات در آنجا دیده نمیشد. در این جزیره چمنزاری دیده می شد که هوایی با ترغتی داشت و در گوشه ای از آن چند رودخانه جریان داشت که آن منطقه را آبیاری میکرد. تعدادی از همسفرهای من سرگرم گلچیدن بودند و تعدادی هم به میوه خوردن پرداخته بودند. من هم در میان چمنی که بین دو درخت و بلند گسترده شده بود و رودخانه ای از کنار آن میگذشت و سایه نشینی پرید آورده بود نشستم و مشغول به خوردن را که با خود داشتم شدم. بعد از خوردن خواب بر چشمانم غلبه کرد و به خواب رفتم. وقتی بیدار شدم ندانستم چه مدت در خواب بودم بسیار تعجب کردم که دیدم همهی هم من در کشتی نشسته و راه سفر را در پیش گرفتند. حتی یک نفر از آنها در آن جزیره دیده نمیشد. از دور شبح کشتی را دیدم. که در افق دریا به صورت کوچکی دیده میشد و فقط آخرین قسمت بادبان آن را دیدم که به زودی از نظر ناپدید شد اندوه عمیقی مرا گرفت و با دست بر سر و بدن خود کوفتم و خود را سرزنش کردم که چرا چنین اتفاقی رخ داده است با صدای بلند گریستم ولی چه فایده کشتی رفته بود و من یکی و تنها در این جای ناشناس باقی مانده بودم اندیشیدم چرا بین این همه مسافر من باید دچار چنین بدبختی بزرگی شوم. ناله میکردم و از بخت بد گله ها داشتم، افسوس که پشیمانی سودی نداشت و کار از کار گذشته بود. با این همه نگرانی قصه به خداوند پناه بردم و از درخت بسیار بلندی بالا رفتم و خود را به سر درخت رساندم تا از آنجا اطراف را بررسی کنم و ببینم جای امیدی برای رهایی از این گرفتاری دیده می شود یا نه. در سمت دریا جز آسمان و دریا چیز دیگری مشاهده نمیشد، ولی در سمت خشکی چیز سفید رنگی از دور به نظر می رسید که نمی توانستم آن را تشخیص دهم. از درخت به زیر آمدم و آنچه قضا باقی مانده بود با خود برداشتم و به سوی محلی که شیء سفید قرار گرفته بود حرکت کردم. همین که به نزدیکی شیء سفید رنگ رسیدم به نظرم رسید که کاسه بزرگی است. که تا آن زمان با آن بزرگی و عظمت کاسه‌ای ندیده بودم ولی وقتی به پای آن رسیدم و به آن دست زدم حس کردم که بسیار صاف و هموار است. به اطراف آن گردش کردم تا شاید روزنه‌ای برای ورود به درون آن بیابم ولی روزنه‌ای در آن وجود نداشت و به علت هموار بودن آن بالا رفتن از آن هم امکان نداشت. پیرامونش را اندازه گرفتم و بیش از پنجاه قدم بود. در این هنگام خورشید در حال غروب کردن بود که ناگهان آسمان تاریک شد و گویی ابر سیاه رنگی سر, سر آسمان را پوشانید. از این تاریکی ناگهانی در بودم و حیرتم به حد کمال رسید. وقتی مشاهده کردم که پرنده از و به سوی من در پرواز است و بالهای بی اندازه بزرگ او باعث جلوگیری از تابش نور خورشید شده است آنگاه به یاد آوردم که در یانوردان غالبا از حیولای پرنده ای وست متوجه شدم که این همون پرنده قولاسایی است که آن را رخ می‌نامند. در این هنگام پرنده فرود آمد و روی همان تخم بزرگ قرار گرفت و ظاهراً برای دراوردن جوجه خود از درون تخم بود. با فرود آمدن پرنده به روی زمین، خزیدم و خود را در کنار پنجه‌های پرنده قرار دادم. بزرگی پنجه پای او به اندازه تنه درخت بود. من از همان محلی که قرار گرفته بودم، بلافاصله پارچه بلندی را که دورادور دور دستار سر خود بسته بودم، باز کردم و محکم آن را به پنجه پای پرنده بستم، به این امید که وقتی روز بعد پرنده به پرواز درآید، من هم از این جزیره پرواز کنم و به محل دیگری بروم، شاید اثری از آدمیزاد در آنجا یافت شود، زیرا هیچ کونه وسیله وسیله‌ی دیگری برای فرار از این سرزمین نداشتم. تمام شب را در کنار پای پرنده به سر بردم تا هنگام طلو آفتاب که پرنده به پرواز درآمد و مرا با خود به آسمان برد و تا آن حد اوج گرفت که از آن انتفاع زمین دیگر دیده نمیشد و بعد از مدت ها پرواز ناگهان و با سرعت بسیار زیاد به سوی زمین فرود آمد که من از هوش رفتم و بعد روی زمین نشست و خود را در کنار پرنده و در روی زمین حس کردم فورنگری پارچه ای را که به پای پرنده متصل می ساخت باز کردم و قبل از اینکه حرکتی کنم مشاهده کردم پرنده مار بسیار ترومندی را به منقار بزرگ خود گرفته و مستقیما به پرواز درآمد. محلی که پرنده فرود آمده بود دریگه در بسیار گودی بود که کوه‌های مرتفعی از هر طرف آن را احاطه کرده بودند و قلیه کوه آنقدر بلند بود که مقتاری از آن را عبر فرا گرفته بود. و تخت سنگ های بزرگ دست تندی روی هم انباشته بودند و امکان هر گونه عبور را از روی آنها غیرممکن ساخته بودند با این مشکلات در واقع خود را به گرفتاری سختری دچار کرده بودم و اگر موقعیت این دره را با جزیره‌ای که آنجا را به کمک رخ ترک کردم مقایسه کنیم به, من... به منطقه بسیار بدتر و نامناسبتری قدم گذاشته بودم که هیچ راهی برای فرار از آن مشاهده نمیشد. همین که در این دره شروع به راه رفتن کردم بر حیرت هم افزوده شد. زیرا می دیدم که سطح زمین از قطعات علماس پوشیده شده است و از دیدن آن هم علماس چشمانم خیره شد و از شادی در پوست خود نمی گنجیدم. اما در فاصله نزیاد دور مشاهده کردم انبوهی از مارهای بزرگ و, و در حرکتند که دیدن این منظره موجب ترس و اندوه گشت. این مارها به قدری تنومند بودند که کوچکترین آنها میتوانست فیلی را به راحتی ببلعد. این مارهای تنومند در تمام مدت روز از ترس رخ همان پرندهی بسیار عظیم که آنها را شکار میکرد به خواب می رفتند و همین که شب فرا می رسید در اطراف دره به حرکت در میآمدند و دنبال طعمه می رفتند. من تمام روزها در اطراف این دره عجیب و غریب به راه رفتن میپرداختم. و گاه و بی گاه در محلهایی که فکر می در آنجاها خطری مرا تهدید نمی استراحت می تا نیرویی تازه کنم و به گردش خود ادامه دهم. وقتی که شب شد و تاریکی بر همه جا سایه افکند، خود را به دهانه قاری رساندم، به سنگ بزرگی در دهانه آن قرار داشت. سنگ را به یک سو گذاشتم و از ترس حجوم مارها در شب به داخل قار پناه بردم و دوباره سنگ را در دهانه آن گذاشتم. گرچه در آنجا خود را محفوظ حس می کردم ولی که نور از بیرون به درون قار میتابید. تابید قدر خوراکی با خود داشتم و مشغول خوردن شدم که صدای هیس هیس مارها به گوشم رسید فهمیدم که خود را داخل قار کردند از شدت ترس و احساس خطر تا صبح موجه هم نزدم و همین که روشنایی روز پدیدار شد مارها هم بیرون رفتند و خود را در لانه های خود پنهان ساختند من در حالی که هنوز بر خود میلرزیدم از درون قار خارج شدم و مدت درازی بر روی هایی که زمین را پوشانده بود راه رفتم بدون آنکه تمایلی در برداشتن آنها در خود حس کنم بالاخره از فسط بیخوابی شب گذشته و خستگی راه رفتن بر زمین نشستم و باقی‌مانده غذایی را که ذخیره کرده بودم خوردم و به خواب عمیقی فرو رفتم هنوز مدت زیادی نگذشته بود که بر اثر برخورد با زمین از خواب پریدم چون به اطراف نگاه کردم متوجه شدم که صدا بر اثر برخورد قطعهی بزرگ گوشت بر روی زمین است. در همین لحظه هم مشاهده کردم که چندین قطعه بزرگ گوشت تازه از بالای سخره ها از نقاط مختلف پایین پرتاب می شوند. و یک گوشت بر روی قطعات الماس به یادم اومد که در یا تعریف می کردند چگونه تعدادی از بازرگانان برای به دستاوردن علماس های موجود در دره روی که های هولناک و خطرناک ورود به آن را غیر ممکن ساخته است شیve‌ای به کار می‌بردند و آن این بود که از بالای قله‌ای که منتهی به دره می‌گردید های بزرگ گوش را به کف دره پرتاب می‌کرده و تیزی‌های الماس در داخل قطعه گوش فرو میرفته. از سوی دیگر عقاب‌های تیزبین که از بالا در جستجوی تومه جهت جوجه‌های خود که در لانه‌های سر قله در انتظار غذا بودندند با دیدن گوشتها در دره فرود آمده و گوشتها را که سنگ های علماس در آن فرو رفته بوده به آشیانه های خود می‌بردند. آنگاه بازرگانان به سراغ آشیانه های که از همه جا در این منطقه فراوان ترند میرفتند و با ایجاد صدای بلند عقااب را وادار به پرواز میکردند و خود تکه های علماس را بدین ترتیب دستست میآوردند. هنگامی که چشمم به گوشت های پرتاب شده از بالای کوه افتاد، فهمیدم که قضیه از چه قرار است و یقین کردم که مطلبی را که در وردان نقل می کرده اند حقیقت داشته است. پرتاب کردن گوشت ها توسط بازرگانان و نور امیدی در دلم تابانید زیرا احتمال دیدار آنها وجود داشت. من با این امید تازه به نجات جان خود نیروی در خود حس کردم و به جمعوری علماس ها پرداختم. تا آنجا که توانستم بزرگترین سنگ های را گردآوری کردم، همه را در کیسه چرمی محکمی که همراه داشتم، و غذایم را در می ریختم ریخته و آن را از الماس های درشت انباشتم. آنگاه بزرگترین پاره گوشت ها را از زمین برداشته و با دستار خود آن را محکم به پشت و دور کمر خود بستم و ضمن کیسه چرمی انباشته از الماس را هم محکم به شکم خود بستم و پشت به آسمان روی زمین دراز کشیدم. هنوز کاملا رو به زمین نخوبیده بودم. که دستهی عقاب بزرگ از آسمان به زمین فرود آمدند و هر کدام سراغ پاره های گوش دفتند و بزرگترین و قویترین آنها هم به سراغ من آمد و پاره گوشتی را که در پشت خود بسته بودم به چنگال خود گرفت و مرا هم با گوشت و آسمان برد و به قله کوه فرود آمد. در همین لحظه گروهی از بزرگانان که در آنجا در انتظار بودند با فریادهای بلند خود عاقاب را ترسده و از نقطه دور کردند. عقاب‌ها هم تکه های گوش را گوشاره‌ها کرده و فرار کردند. در این هنگام یکی از بازرگانان به آشیانه اقاب آمد و مرا در آنجا دید. بازرگان به محض دیدن من در آنجا بسیار ترسید و با حیرت فریاد زد: "اینجا چه کار می می‌کنی؟" سپس با من به مشاجره پرداخت و گفت: "چرا مال من را ای؟ من به او گفتم: "تو مرا شناسی ولی همین که بدانی من چگونه آدمی هستم، با من بهتر از این رفتار خواهی کرد. بی خودت را ناراحت نکن. من به قدر کافی با خودم الماس آورده‌ام که برای من و تو کافی خواهد بود و بیش از الماس همه بزرگانان است اگر آنها هایی دارند که بر حسب اتفاق از به دستشان رسیده است ولی من که در ته دره بوده‌ام خودم هر قطعه را دستچین کرده و در این کیسه چرمی ام باشتم با گفتن این سخنان کیسه چرمی پر از الماس را به او نشان دادم هنوز گفته های من به پایان نرسیده بود که بازرگانان همگی با تعجب دور من حلقه زدند و وقتی آنچه چه بر سرم آمده بود برایشان بیان کردم، تعجب آنها به حد کمال رسید و از تدبیری که برای رهایی از آن دره ترسناک و عمیق به کار برده بودم، زیاد خوشنود نبودند، زیرا آن را اقدامی جسورانه و خطرناک میدانستند آنها مرا با خود بردند و بعد از باز کردن کیسه و نشان دادن قطعات بسیار درشت الماس، همگی آنها در حیرت فرو رفته. و می گفتند مادرکی شکست در درباره شاهان چنین علماس های ایم. آنگاه از آنها پرسیدم آشیانی که من در آن فرود آمدم زیرا هر بازرگانی یکی از آشیانه های اقابها را برای خود به طور انتخابی انتخاب می کرد. متعلق به کدامی از آنهاست تا هر مقدار علماس می خواهد به او بدهم. یکی از آنها گفت تو به آشیانه من فرود آمدید و سپس کوچکترین علماس را برداشت. به او گفتم بیشتر بردار. به من ضرری نخواهد خورد. او پاسخ داد: همین یک قطعه مرا خوشنودی سازد، زیرا ارزش این قطعه الماس زندگی مرا تا پایان عمر تأمین میکند و نیازهای مرا برآورده خواهد ساخت، به نحوی که دیگر احتیاجی نیست که خود را با این گونه سفرها به خاطر کسب ثروت به خطر بیاندازم و اینک ای خود را بی‌نیاز احساس می کنم شب را در آنجا به سر بردم. و من هم سرگش خود را بار دیگر برای آن عدده قبلا حضور نداشتند بازگو کردم. من خود را عالم رویا تصور میکردم و هنوز باورم نمیشد که از خطری که به آن گرفتار بودم رهایی یافتم. بازرگانان باز هم به پرتاب کردن پاره های گوشت به درده ادامه دادند و هر کدام از آنها به میزان بخت خود سهمی از اماما را نصیب خود میکردند. صبح روز بعد همگی از آن محراه افتادیم، و به کوههای سر فلک کشیده سعود کردیم و در آنجا با مارهای تنومند روبرو شدیم که خوشبختانه توانستیم خود را از گزند آنها حفظ کنیم و بخت با ما یار بود که از آن نقطه پرخطر جان سالم به در در اولین بندر که رسیدیم به کشتی نشستیم و به جزیره رافا وارد شدیم. در آنجا درختان کافور به حد وفور روییده میشد و هر سال محصول فراوانی از آن برداشت میشد. این درخت به قضی قطور و شاخه های آن و اندازه پرشاخ و برگ بود که یکصد نفر به می می‌توانستند در زیر سایه آن استراحت کنند ما هم در زیر سایه این درخت استراحت کردیم برای به دست آوردن کافور ابتدا در قسمت بالای درخت سراخی ایجاد می کنند و در زیر آن زرفی قرار می‌دهند و شیره‌ی کافور از آن سراخ بیرون می‌آید و تدریجا ظرف را پر می کند. و در مجاورت هوا شیری درخت قلزت و قوام میآورد. بعد از مدتی که شیری درخت به بیرون تراوش کند درخت به تدریج پجمرده و خشک می شود در این جزیره از دیداری های شگفت آورد کرگدن است که هیکل آن از فیل کوچکتر و از گاومیش میش بزرگتر است و شاخی بر روی بینی خود دارد که بسیار سخت و خطرناک است طول این شاخ حدود یک زر است و از یک سو تا سوی دیگر شکافی دیده می دی این کرگدر ها بسیار نیرومند و وحشیاند و با فیل ها مبارزه می کنند و شاخ خود را در شکم فیل فرو می کند و او را از زمین بلند می کند و به بالای سرش می برد. ولی در این حال خون و چربی فیل به چشپای او وارد می شود و او را نابینا می سازد و به روی زمین در می و بسیار مایه تعجب است که رخ در همان حال از آسمان و زیر زمین آمده و حیوانها را با چنگالهای نیرومند خود برداشته و برای سیر کردن شکمهای بچه های خود میبرد من برای آنکه شنوندگان را خسته نکنم بسیاری از مشاهدات شگفتآور خود را در این جزیره بازگو نمیکنم و فقط میگویم با دادن مقداری از علماس هایی که از آن جزیره به دست آورده بودم کاله های تجارتی فراوان و گرانبهایی را خریدم از آن جزیره به چندین جزیره دیگر رفتیم و بعد از بازدید از چند شهر بازرگانی و پر رفته آمد سرانجام به شهر بصره مراجعه کردیم و از آنجا به بغداد برگشتیم. بعد از ورود به به بسیاری از فقرار رو کمک کردم و آنها را از تنگ رهایی بخشیدم و خودم با ثروت کلانی که از این سفر آیدم شده بود در کمال رفاه به زندگی همراه با شادی پرداختم و در پذیرای دوستان سختی های سفر را فراموش کردم. سندباد که داستان سفر دوم خود را به پایان رساند با همصد عدد سکه طلا به هندباد تسلیم کرد و از اووخهش کرد که فرد برای شنیدن شرح سفر سوم او به خانه سندباد بیاید. سایر میهمانان نیز با سندباد خداحافظی کردند و به خانه های خود رفتند و دوباره روز بعد در همان ساعت به قصر سندباد مراجعه کردند. باربر احساس میکرد که رفته رفته بیپولی گذشته خود را فراموش کرده است. سنباد بعد از شام به شرح سومین سفر دریایی خود پرداخت